سلام و وقت بخیر به, به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی کانال هزار افسان امروز با قسمت سوم و آخر داستان قلبی از یخ در خدمت شما هستیم مانیکین رو به پادشاه کرد و با وقار زیاد گفت الا حضرت اگر اسم من شما رو میخندونه لطف کنید و بیشتر بخندید اما با افتخار میگم که قدرت منه که میتونه شما را نیرومند کنه من بازیچه این بزرگزادگان نیستم و از اونها میخوام که هر فکری در مورد من میکنن فورا از ذهنشون بیرون کنن. با گفتن این حرفا هو به شاهزادهای کرد که از همه بلندتر خندیده بود و مقرورانه اون رو به نبردی تن به تن فراخواند این شاهزاده که فادسه نام داشت با نگاه تحقیرآمیز مبارزه رو پذیرفت قرار مبارزه رو برای روز بعد گذاشتن بعد از اینکه شاهزاده مانیکین از حضور پادشاه مرخص شد، اون رو به تالار مهمان بردند تا شاه سابلا رو ببینه. با دیدن سابلا و زیبایی هوش رو باش، لحظه نفسش بند اومد و ماتش برد. بالاخره به خودش اومد و گفت: شاه دوست داشتنی. با دیدن تصویر زیباد تا به مقاومت نیوردم و به سمت راهسپار شدم. من از سمت دیگر جهان میام. تا بتونم خدمتی به تو بکنم. عشقم نسبت به تو حد و مرزی نداره. اسم عجیبم، لحظات پیش باعث شد تا آماده نبرد با یکی از خواهندگانت بشم. فردا، با این شاهزاده نابکار و تنومند مبارزه میکنم. کنم. میکنم. افتخار بدید تا این نبرد در حضورتون انجام بشه. باید به جهانیان ثابت کنم که اسمم نشاندهندی نیرو و توانم نیست. اگر پیروز شدم، محبت کنید و منو به عنوان دلابر خودتون بپذیرید. وقتی حرفای شاهزاده تموم شد، شاهدخت خوشحال شد. چون اگرچه قلب نداشت، ذوق و شوق داشت. اون با مهربانی جواب داد که با کمال میل پیشنهادش رو میپذیره. این پاسخ به شاهزاده دل جرعت داد تا به شاهدخت التماس کنه، به رقباش اعتنایی نکنه. شاهدخت گفت من هیچ علاقه بین آدمهای احمق ندارم. اونها منو با عواطف و حماقتشون آزار میدن. من همونطور که هستم از اودی کارهام برمیام. اونها در تمام سال فقط درباره رهایی من از غمزدگی خیاری صحبت میکنن. حتی کلمه از حرفشون رو درباره عشق نمیفهمم. کسی چی میدونه که همه چیز چقدر ک باید بگم که هیچ چیز رو به یاد نمیارم. مانیکین از حرفهای شاهدخت فهمید که، سرگرم کردن و خوشحال کردن اون روشی بسیار مطمئن برای جلب محبت اون هست و بهتره که دنبال اضافه کردن اسمش به فهرست کسانی که پیدرپی پی به اونجا میان و اون رو با موضوع مرموز عشق آزرده خاطر میکنن نباشه. مانکین از رقبای خودش به اون گفت و هر کاری کرد تا شاهدخت قلبن اگر چه قلب نداشت به اون توجه کنه. اون موفق شد و تونست در تمام اوقات شاهدخت رو سرگرم کنه به طوری که شاهدخت خیلی زود اعلام کرد در بین تمام کسانی که در دربار هستند ترجیح میده فقط با مانیکین صحبت کنه روز بعد زمانی که موعد مقرر برای مبارزه رسید پادشاه و ملکه و شاهدخت در جایگاه خودشون نشستند همه درباریان و مردم شهر برای تماشا گرد اومده بودند شهزاد فادسه که سلاح زرهی شکومن داشت به همراه تن از همراهان خودش و صد مرد مسلح که هر اسبی عصبی داشتند نظیر به میدان مبارزه وارد شد. از سمت دیگه شهزاد مانکین فقط با یک نهزه به همراه مستای وفادارش پا به میدان گذاشت. تفاوت آشکار میان این دو مبارز اونقدر زیاد بود که صدای خندگی جمعیت به هوا رفت. بعد بانگ ها بلند شد و دو مبارز به سمت همدیگه حمله کردند مانکین با نیزه خودش ضربه‌ای به حریف زد و اون رو از اسبش پایین انداخت و به سرعت نیزه رو روی سینه اون گذاشت از هر سمت زمزمه تحسین بلند شد مانکین به اون رحم کرد اون رو به شاهدخت کرد و بهش فهموند که تمایوری به کشتن کسانی که به دربار اون اومدن نداره بعد به فادسه خشم خشمگین و شکست خورده دستور داد که از جا بلند شه و از شاهدخت که برای نجات جونش وساتت کرده تشکر کنه. بعد در بین بانگش پورها و فریادهای شادی مردم اون و موستا با وقار تمام از میدان مبارزه بیرون رفتند. پادشاه دنباله شاهزاده فرستاد تا به خاطر پیروزیش به اون تبریک بگه. جایی هم در قصر برای اقامتش بهش داد و مانیکین هم با خوشحالی پذیرفت. در همون حال شاهدخت تقاضا کرد که موستا پیشش ببرند شاهدخت از دیدن حیوان و رفتار با نزاکت و موش سرشارش خیلی خوشحال شد و به مانکین التماس کرد که سگ رو به اون بده تا مال خودش باشه شاهزاده با خوشرویی رضایت داد نه فقط به خاطر بهجا اوردن ادب بلکه به این علت که میدید دوست وفادار شب و روز در کنار شاهدخت و آماده به خدمته تمام این وقایه شاهزاده مانکین رو به شخصی بسیار مهم در دربار تبدیل کرد. کمی بعد سفیر پادشاه قدرتمند پا به مرزهای اون سرزمین گذاشت و تقاضا کرد تا برای تسلیم نامه پادشاه به فارداکیمبراس و گرفتن پاسخ به پایتخت بیاد. متن نامه این بود: من برندا تیمور به فارداکیمبراس درود میفرستم. اگر زودتر از اینها تصویر دختر زیبات سابلا را دیده بودم، اصلا نمیگذاشتم این همه ماجرا پیش بیاد. و شاهزادگانی فرومایه برای حضور در درباره دست به کوشش بزنند و دل خود را به پیوند با شاهدخت خوش کنند من از هیچ رقیبی نمیترسم و همکنون اعلام می کنم قصد دارم و دخترت ازدواج کنم بی تردید همه شاهزادگان با شنیدن این مطلب به جایگاه خودشون برمیگردند سفیرم فرمان داره تا مقدمات سفر شاهدخت رو به دربارم برای برگزاری جشن ازدواج به هیچ تأخیری فراهم کنه این بسات مسخره که راه انداختی و در همه جای جهان در مورد کوهستان یخ چیزهایی پخش کردی اصلا برای من اهمیت نداره حتی اگر شاهدخت واقعا قلب نداشته باشه هم برا مهم نیست اگر کسی بتونه کمکش کنه تا قلبی به دست بیاره اون کس منم بدرود پدر زن عزیزم خوندن این نامه پادشاه و ملکه رو خیلی ناراحت و افسرده کرد شاهدختم از این وقاحت به خشم اومد اونسه موافقت کردند مطالب نام مخفی بمونه تا بدن ببینند چه جوابی باید به اون بدن اما مستاک از تمام مطالب نامه سردار برده بود یک راست به سراغ شاهزاده مانکین رفت و همه چیز رو به اون گفت شاهزاده خیلی رنجید و ترس بر اون چیره شد بعد از اینکه کمی راجع به این موضوع فکر کرد تقاضا کرد شادخت رو ملاقات کنه ضمن صحبت با زیرکی به موضوع نامه که فکر خودش و شادخت رو بسیار مشغول کرده بود اشاره کرد شاه دخت همه چیز رو تعریف کرد و از اون خواست راهنماییش کنه و بگه چه کاری میتونه بکنه. این دقیقا همون چیزی بود که اون نمیخواست، دست کم در مورد وضع خودش تصمیم بگیره. با این حال جواب داد که به نظرش بهتره شاهدخت وقت کشی کنه و قول بده که بعد از ورود سفیر پاسخ میده. هر دو موافقت کردند. سفیر اصلا دلش نمیخواست اجرای دستور پادشاه به تأخیر بیفته، اما مجبور بود رضایت بده. اون با تکبر بسیار گفت که به زودی ملازمان به اونجا خواهد فرستاد و این کار رو خیلی زود انجام خواهد داد تا به همه مردم شر و تمامی شاهزادگان غریبه که مثل سیلاب به اونجا هجوم آوردن قدرت و عظمت سرورش رو نشون بده. مانکین ناامیدانه تصمیم گرفت که یک بار دیگه از پاریژنستا تقاضای کمک کنه. اون همیشه با قدرشناسی به پری مهربان فکر می‌کرد از راستی که این سفر رو شروع کرد. با خودش قرار گذاشت که فقط در مواقع بسیار حساس و ضروری از اون یاری بخواد. اون شب از بس درباره این مشکل فکر کرد خسته شد و در بستر افتاد. در خواب دید که پری در کنارش ایستاده پری گفت مانیکین تا اینجا کارها رو خیلی خوب انجام دادی. به خاطر من هم که شده همینطور ادامه بده. همیشه وقتی شدیدن به من نیاز داری دوستان خوبی پیدا می کنی. در مورد مشکلی که با سفیر پادشاه پیدا کردی به بسابرا دلگرمی بده تا با خیال راحت و آرامش خاطر منتظر ورودش و باشه چون در نهایت همه چیز به نفع اون تمام میشه شاهزاده میخواست به پای پری بیفته و ازش تشکر کنه اما بیدار شد و فهمید که خواب دیده با وجود این رویاش رو به دست آورد و روز بعد به دیدار راه دخت رفت و بهش دلخوشی داد و گفت که همه چیز به خوبی تمام میشه اون حتی پار و فراتر گذاشت و پرسید که آیا نسبت به کسی که اون رو از دست برند تیمور نابکار نجات بده قدرشناس خواهد بود یا نه؟ شادوخت جواب داد که قدرشناسیش حد و مرزی نخواهد داشت. بعد از سبلا پرسید که بزرگترین آرزوش چیه؟ شادوخت در پاسخ به این سوال گفت که درش میخواد دیگران نسبت به موضوع احمقانی عشق درست مثل خودش بی تفاوت و بی احساس باشند. این حرفها برای دلداده ای مثل شاهزاده مانکی سنگین و غیر منتظره بود اما اون اندوهش رو فراموش کرد و روحیه و شجاعت خودش رو حفظ کرد در همین اسنا سفیر پیغام فرستاد که دقیقا روز بعد با تشریفات کامل به پایتخت میاد تا پاسخش رو دریافت کنه از همون صبح زود تمامی ساکنان شهر به جنب و افتادند تا بتونن بهترین جاها رو برای تماشای ورود سفیر پیدا کنند اما پری مهربان جلسا براش سرگرمیه ای تدارک دیده بود که خیلی فراتر از حد انتظارشون بود اون درست موقعی که سفیر با دبدبه و کپکپه پا به شهر گذاشت چشمان همه تماشاگران رو افزون کرد لباسهای فاخر و با شکوه سفیر و همراهانش به چشم مردم کهنه پارچههای پارو و فقیرانه اومد لباسهایی که هیچ گدایی حاضر نمیشد اونها رو بتن کنه اسبان چالاک اونها به چشمشون همچون حیواناتی لاغر جلوهگر شدند که استخوانهاشون بیرون زده بود و به زحمت پاشون رو در پی روی زمین میکشیدند. زین و افسار و تمام تجهیزاتشون که از طلا و جواهر بود به چشم تماشاگران مثل پوست قنه گوسفنددار میومد که حتی برای اسبانی که زمین رو شخ میزدند هم مناسب نبود. زیر سفیر آدم های زش رو کسیف بودن صدای شیپورها در نمیومد، انگار سوک هستند که با ساقی پیاز درست کردند یا اینکه، شانههایی رو در کاغذ پیچیدند و به اونها فوت می‌کنند. به دنبال این قافله پنجاه کالسکه حرکت می‌کردند که به نظر مردم مصر 50 ارابه کش بودند. در آخرین ارابه سفیر یعنی نماینده پادشاه قدرتمند نشسته بود. اون مهمترین مسافر این قافله در بود. تمام کسانی که در این قافله حضور داشتند به ظاهر زیبا و باشکوه بودند و تکبر و غرور از رووشون می‌بارید. اونها فکر می‌کردند تمام کسانی که در اونجا جمع شدند و تماشاشو میکنند مجذوب جاه و جلال و عظمت خاوفل شدند و برازندگی اونها رو با جان و دل باور دارند. با پیشروی دسته تشریفات صدای خنده و فریادهای استهزای مردم بلند و بلندتر میشد چنانکه که تمام فضای اونجا رو پر کرده بود. بالاخره همه ماجرا به گوش پادشاه رسید که در تالار بار آم منتظر سفیر بود. پیش از اون که اون گروه به قصد برسه اون از همه چیز باخبر شده بود و گمان میکرد که اونها قصد توهین به اون رو دارن. پس دستور داد که تمام دروازه ها رو ببندند حالا میتونید خشم و عصبانیت سفیر رو که با اون همه شوکت و جلال به اونجا اومده بود وقتی که دید پادشاه نمیخواد اون رو به بپذیره تصور کنید اون وحشیانه شروع به فهاشی به پادشاه و به مردم کرد دسته تشریفات به شدت سردرگم شده بود مردم خشمگین بیشتر از قبل مسخرهشون کردند و با پرتاب گل و سنگ حالشون رو جا آوردن. لازم نیست بگم که سفیر و همراهانش تا جایی که اسبها توان داشتند به سرعت از اونجا دور شدند. اما خیلی طول نکشید که به پادشاه اعلان جنگ دادند و اون رو تهدید کردند که کشور رو با آتش و شمشیر به خاک و خون خواهند کشید. چند روز بعد از این سفر مصیبت بار پادشا با یارد با پیک های نامه های دوستانه برای مانکین فرستاد و خواهش کرد تا اجازه بده در این گرفتاری و مشکلی که پیش اومده به اون کمک کنه. با یارد از ته دل آرزو کرد مانکین فکری بکنه. مانکین فوراً دست به کار شد. اون تمام چیزهایی رو که از زمان جداییشون اتفاق افتاده بود برای دوست وفادارش موستاد تعریف کرد. حتی کلمه ای رو از اتفاقاتی که بر سر پادشاه و ملک اومده بود از قلم ننداخت. در پایان از دوست با فش تقاضا کرد که هزاران سگ کهنه سرباز برای کمک به اون بفرسته نه پادشاه و ملکه و نه شاه دخت از رفتار عجیب سفیر برنداتی مور سردر نمی آوردند با این حال اونها آماده برافروختن آتش جنگ بودند تمام شاهزادگانی که به طرف کوهستان یخ رفته بودند خودشون را برای نبرد آماده کردند همه میخواستند فرمانده لشکر باشند. مانیکین یکی از اولین داوطلبان بود اما دنبال مقام نبود و فقط میخواست در بین لشکریان باشه و به فرمانده که سربازی دلیر و مشهور به خاطر پیروزیهاش در جنگها بود نزدیک باشه. همین که لشکر آماده شد به سوی مرز روانه شد. در اونجا با نیروی دشمن که خود برنداتی مور فرماندهیش رو برعدداش رو برو شد. اون بسیار خشمگین بود و قصداش انتقام توهین به سفیرش رو بگیره و شاه دخسابلا رو به دست بیاره. سربازان جنگی بیار آمادگی دفاع شدند. خیلی طول نکشید که توانایی‌های مانکی نظر افسران رو به اون جلب کرد و به خاطر شجاعتش مورد احترام سربازان واقع شد. اون در اون ملکه طوری عمل کرد که بالاخره پیروز شد و بسیاری از سربازان دشمن رو به حلاکت رسوند. بالاخره برنده تیمور تمام لشکرش رو درگیر اون جنگ ترسناک کرد. سپاه بی بیباکان جنگید اما فرماندهشون کشته شد. بخش بزرگی از سپاه شکست خورد و بقیه نیروها مجبور به عقب نشینی شدند. در این بین مانکین دست به گارهای شگفت انگیزی میزد. اون چندین بار نیروهای عقب نشسته رو به صحنه نبرد کشون و دشمن رو زمین گیر کرد. بعد از این ماجرا، سربازانی رو که پراکنده شده بودند جمع کرد و اونها را به حالت آماده باش نگه داشت. سختی از راه رسید و همین باعث شد که مدتی آتش جنگ فروکش کنه. اون به دربار برگشت جایی که بحت و حیرت سایه انداخته بود پادشاه که از مرگ فرماندگی وفادارش دل شکسته بود از مانیکین خواست که فرماندگی سپاه را بر عهده بگیره و اشاره کرد که در تمام امور دربار با اون مشورت خواهد کرد در اینجا بود که اون نقشه قبلیش رو برای جلب توجه شاهدخت دنبال کرد اون میخواست هر طور شده درباره عشق که از نظر شاهدخت موضوعی که سالت بار بود صحبت کنه شاهدختم از دیدار مانیکین شادمان بود اونها زمستون سرد رو با خوشحالی پشت سر نهادند. شاهزاده به طور پنهانی برای نبرد بعدی نقشی میکشید اون محرمانه از ورود نیروی تقویتی سگان مودراز گوشاویخته با خبر شد و برای تعیین جایگاهشون در مرز بدون اینکه جلب توجه کنه دستورهایی داد. در اولین فرصت با فرمانده سپاه جنگجوی پیر و با تجربه بود مشورت کرد. فرمانده که فردی باهوش بود تصمیم گرفت به محض پیشروی دشمن نبردی جانانه به راه بندازه. برنداتی هم لحظه را از دست نداد و با تمام پا به میدان گذاشت و از هیچ کوششی برای نابودی کامل فارداکین کیمبراز فروگذار نکرد. اما همی که سربازان یورش آوردند، سگهای سرباز از کمینگاهشون بیرون اومدن و بر سر اسبهایی که دم دستشون بودن پریدند اونها با این کار نه فقط وحشت و آشوب در سپاه دشمن ایجاد کردند بلکه گلوی سواران رو به دندان گرفتند و تعداد بیشماری از اونها رو از اسب پایین کشیدند بعد اسبها رو به عقب روندند و سربازان رو فراری دادند و همه رو مات و مبوط کردند حالا راه برای پیروزی کامل مانیکین هموار شده بود اون و مور برای نبردی تن به تن رو شدند اون پادشاه برند وتیمور را اسیر کرد و اون رو به دربار فرستاد اما پادشاه تا اونجا زنده نموند غرورش اون رو به هلاکت رسوند چون فکر حضور در برابر سابلا در چون شرایطی براش زجرآور بود در این بین شاهزاده فادسه و تمام کسان دیگری که پشت سر مونده بودند با سرعت تمام برای فتح کوهستان یخ خودشون رو به دربار رسوندن، چون میترسیدن که مانیکین همونطور که در تمام کارها موفق شده بود این بار هم کامیاب بشه به راستی نمیشه انکار کرد که اون به شاهدخت خدمات زیادی کرده بود. اما سابلا اون رو فقط به خاطر کارهای دلاورانش تحصیل می کرد و اصلا به نظر نمی رسید که بخواد عشق خودش رو به اون ابراز کنه. مستا خیلی تلاش کرد که اون رو آروم و متقاعد کنه که شاهدخت کسیدگی رو دوست نداره. این حرفا تا حدودی بهش آرامش داد اما با خودش گفت هر چه بادا باد دیگه تاخیر رو بیش از این جایز نمیدونست پس تصمیم گرفت بره دنبال همون کاری که به خاطرش به اونجا اومده بود وقتی پیش پادشاه و ملکه رفت و اجازه مرخصی بگیره اونها ازش تقاضا کردند که همونجا بمونه و به کوهستان یخ نره چون باخبر شدند که شاهزاده فاداسه و همه همراهانش در برف گیر کرد و به حلاکت رسیده بودند اما مانیکین تصمیمش رو گرفته بود سابلا اون رو دقیقا با همون تفاوتی مؤدبانه‌ی ملاقات اول بدرقه کرد از سر اتفاق وداع اونها در حضور همه درباریان صورت هم گرفت مانکین چنان رفتار دلپذیری داشت که همه تحت تاثیر قرار گرفتند و از رفتار شاهدخت با اون دل خور شدند بالاخره پادشاه بهش گفت شاهزاده تو همیشه هدیایی رو که به خاطر قدردانی از خدمات ارزشمندت بهت تعارف کردیم رد کردی حالا دلم میخواد که شاهدخت ردای خد سمور خودش رو بهت بده امیدوارم اون را رد نکنی. ردای خز سمور به راستی باشکوه بود و شادوش خیلی دوست داشت که اون رو بپوشه نه به این خاطر که احساس سرما میکرد بلکه چون خیلی زیبا بود و تناسب کاملی با تهرنگ سیما و گیسوانه زرین و درخشانش داشت به هر حال اون ردای خز سمور رو در آورد و با ادب خیلی زیاد از شاهزاده مانکین تقاضا کرد که اون رو قبول کنه مانکین از فرد شیفتگین حدگر پذیرفت اون علاوه بر ردا دسته کوچیک از انواع چوب هم برداشت و همراه با دو سگ از بین 50 سگی که بعد از پایان جنگ زنده مونده بودن راه سفر در پیش گرفت. به هر شهری که می رسید مردم اون رو با عشق و محبت بدرقی می‌کردند. در آخرین روستای کوچیک یک آسایش رو جا گذاشت و با پای پیاده به پیشروی زحمت خودش در برف ترسناکی که تا چشم کار میکرد همه جا رو سفید پوش کرده بود ادامه داد. بالاخره به جایی رسید که باوچای رو هشت سگ دیگه روبرو شد سگها با شادی خیلی زیاد به پیشوازش رفتند و به اون گفتند هر اتفاقی که بیفته همراهش میرن و با کمال میل به اون خدمت میکنن دوباره بره افتادند اما این بار سرشار از جرأت و امید اول پا به مسیری باریک و دشوار گذاشتند که البته حرکت در اون غیر ممکن نبود خیلی زود از این مسیر خارج شدند تنها راهنماشون ستاره قطبی بود شاهزاده که پس از ملاحظات بسیار جدا تصمیم گرفته بود تا نقشش را عملی کنه چند ترکیه چوب از دسته چوبهایی که با خودش آورده بود برداشت و اونها رو در برف کاشت. بعد با دو سر انگشت خودش اندکی از گرد جادویی رو که در قایق افسون زده جمعآوری کرده بود روشون پاشید و با نهایت شادمانی دید که ترکه های چوب سر بروردند و رشد کردند. در مدت بسیار کمی اون منطقه به صورت بیشهی پوشیده از انواع درختان در اومد. همین درختان شکوفه دادند. شاخه زیر بار میوه رسیده رسیده سرخم کرده بودند. حالا هرچی احتیاج داشتن در دسترس بود. میتونستند در اون برف و سرما آتشی حسابی روشن کنند و خودشون رو گرم کنند. شاهزاده چند سگ رو برای بررسی راه پیش رو به جلو فرستاد. وقت خوب هم یارشون شد، و اسبی پیدا کردند که با بار سنگینش توی برف گیر کرده بود. اونها فوراً رفقاشون رو آوردند و با کمک اونها غنایم به دست اومده رو پیروزمندانه پیش شاهزاده آوردند. در بین باری که بر پشت اسب بود، مقدار زیادی شیرینی پیدا کردند به طوری که اون شب همه سگها به قدر کافی غذا خوردند و با شکم سیر خوابیدند. به این ترتیب اونها در طول روز پیش میرفتند و شب با خیال راحت اردو میزدند همیشه شاخه ها درخت رو جمع می کردند و میوه رو میخوردند و بعد با همون شاخه‌ها برای خودشون سرپنا میساختند. ساختند. اونها پا در راهی دشوار گذاشته بودند. شاهزاد این تأکید کرد که اونها برای زوب کردن یخ هیچ کوششی نکنند. اونها به راهشون ادامه دادند و پیش رفتند. بیش از سه ماه در راه بودند. روز به روز کوهستان یخ که زمان طولانی اون رو از دور می‌دیدند نزدیکتر می شد. تا اینکه بالاخره کاملا بهش نزدیک شدند از دیدن ارتفاع و شیب اون چهار ستون بدنشون لرزه افتاد اما با صبر و استقامت به راهشون ادامه دادند و گام به گام پیش رفتند با آتش زدن چوبهای جادویی خودشون رو گرم می‌کردند اگر این چوبها رو نداشتند حتماً بر اثر سرمای شدید یخ میزدند. بالاخره خودشون رو در برابر دروازه های قصر باشکوه یخی دیدند که مثل تاجی بر تارک کوهستان میدرخشید قلب سابلا در سقوطی مرگبار و خوابی چون یخ دیده میشد حالا کار خیلی دشوارتر شده بود اگر اونها میخواستند برای زنده موندن آتیش درست کنند بر اثر آب شدن تکه های بزرگ یخ قصر یخی آب میشد و فرو می میریخت و در یک چشم برهم زدن جونشون به خطر می میافتاد اونها با احتیاط و به سرعت از محوطه قصر و تالارها گذشتند و بالاخره در مقابل خود تخت بزرگی دیدند بر روی خرمنی از برف الماس درخشان و تابان بزرگی قرار داشت که قلب سابلای زیبا رو در خودش گرفته بود بر روی پایین ترین پله جملهای با یخ نقش بسته بود هر که هستی و با شجاعت و فضیلتی که داری بدان که با به دست آوردن قلب سابلا به نیک بختی و آرامشی خواهی رسید که به راستی شایسته هستی شهزاد مانکین جلو رفت و با قدرت باقی مانده در وجودش دست راست کرد و الماس ارزشمند رو که براش در این جهان بیش از هر چیزی ارزش داشت برداشت. اما بلا فاصله بیهوش بر روی خرمن برف فرو افتاد. سگهای وفادارش خیلی سری جلو اومدن تا جونش رو نجات بدن. اونها مانکین رو شتابان از تالار بیرون بردند. اونها خیلی به موقع دست کار شدند. چون صدای خرد شدن و فروریختن های بزرگیخ را شنیدند کاخ پری به آرامی بر اثر گرمای غیرعادی ویران شد سگها تا موقعی که خودشون رو به پایین کوه نرسوندن اصلا به فکر بههوش آوردن مانیکی نبودند وقتی حالش جا اومد و دید که قلب سابلا رو در دست داره از شادی در پوست خود نمیگنجید اونها با سرعت تمام قدم در جاپاهای خودشون گذاشتن. این بار شهزادی خوشبخت تا به تماشای پیکرهای یخزدگی رقیبان شکست خورده و دلشکستهی رو نداشت که در مسیرش افتاده بودن. اون به سگها دستور داد که اونها رو به زندگی برگردونند و از دردشون کم کنند. سگها کارشون را با موفقیت انجام میدادند. روز به روز بر تعداد همراهان شاهزاده افزوده میشد بهطوری به طوری که وقتی به دهکدی بازگشت که عصبش رو در اونجا گذاشته بود، 500 شاهزادی والا مقام اون رو همراهی میکردن. تعداد دلاوران و زیر دستان اونها قابل شمارش نبود. مانکین چنان معدبان و فروتنان رفتار میکرد که اونها واقعا از سعیدل همراهیش میکردن و به اینکه در رکابش بودن افتخار میکردند وقتی میدید همزیستی مسالمت با تمام جهانیان چقدر آسونه احساس خوشبختی و سعادت میکرد. خیلی طول نکشید که دوست وفادارش موستا رو دید که به سمتش میدوه. موستا در مورد تغییر ناگهانی و شگفت انگیزی که در وجود شاهدخت روی داده بود صحبت کرد و گفت که اون بسیار مهربان و متفکر شده و در یک کسی به جز شاهزاد مانیکین حرف نمیزنه. موستا در ادامه گفت که شاهدخت از نگرانیهاش و دشواریهایی که ممکن بود شاهزاده رو به رنج بندازه حرف میزنه موسی گفت که شاهدخت تمام حرفاش رو با آب وتاب بسیار درباره شجاعت شاهزاده به پایان میبره بعد چند پیک از سوی پادشاه و ملکه که تازه از بازگشت پیروزمندانه مانکین باخبر شده بودند برای عرض تبریک نزد شاهزاده اومدند سابلا هم پکی به سمتش فرستاد و با شیواترین سخنان پیش اپیش ازش استقبال کرد شادوخ از شاهزاده تقاضا کرد تا موستا را پیش اون برگردونه مانیکین اطاعت کرد و موستا پیش شاهدخت برگشت اون برای سابلا بسیار عزیز بود چون هدیه دلارش بود بالاخره مسافران به پایتخت رسیدند و با شکوه و عظمتی شاهانه از اونها استقبال شد فارداکین بهراست و بیربنتاین مانیکین رو در آغوش گرفتند و اعلام کردند که اون وارث تاج و تخت و شوهر آینده شاهدخته. اون هم از این همه افتخاری که نصیب شده بود سپاسگزاری کرد و اون اجازه پیدا کرد که به حضور شاهدخت بره. این اولین بار بود که شاهدخت در طول زندگیش از شرم سرخ شده بود و نمیتونست کلمه‌ای بر زبان بیاره. شاهزاده در برابرش زانو زد. الماس شکمند رو بالا گرفت و گفت: بانو، این گنج از آن شماست. تمام خطرها و دشواری‌هایی رو که از سر کافی بودن تا برام شایستگی و افتخار بیارن. شادخت گفت آه شازاده اون رو میپذیرم و دوباره به خودت برمیگردونم چون حالا راستی به تو تعلق داره. در همین لحظه پادشاه و ملکه وارد شدند و با پرسش های پی, پی حرف اون رو قطع می به نظر میرسید که همه بیشتر درباره موضوعی خاص از اون سوال می‌کردند. مانکین متوجه شد که بیش از هزار نفر با موقعیت‌های متفاوت از اون فقط میپرسند راستی آیا اونجا خیلی سرد بود پادشاه پیششون اومد تا از مانکین و شادخت بخواد همراهش به اتاق شورا بیان اونها هم همین کارو کردند در واقع اونها میدونستند که پادشاه قصد داره مانکین رو به عنوان داماد و جانشین خودش به تمامی بزرگان دربار که در اتاق شورا جمع شده بودند معرفی کنه همین که مانیکین متوجه منظور پادشاه شد تقاضا کرد اجازه بده اول اون صحبت کنه اون تمام داستانش رو تعریف کرد و حتی به این حقیقت که پسر یک روستایی اشاره کرد هنوز حرفش تمام نشده بود که آسمان تیره شد رد به خروش درومد، برق جهید و یک دفعه در همهمه تندر و آزرخش جنسا پری مهربان ظاهر شد اون رو به مانیکین کرد و گفت من خیلی خوشحالم چون تو نه تنها فردی دلیر بلکه قلب مهربانی داریم بعد خطاب پادشاه فاردان کینبراس داستان واقعی زندگی شاهزاده را تعریف کرد در ضمن حرفاش گفت که اون با تمام توان خودش شاهزاده را به بهترین نحو آموزش داده تا شایستگی فرمان فرمانروایی بر زیر رو داشته باشه اون در ادامه به مانکین گفت حالا میفهمی که داشتن دوست وفادار چقدر ارزشمنده حالا تو رو از لذت دیدار پادشاه با یارد و رو آیاش بهره مند میکنم. اونها پاداش مهربانی‌هاشون رو در حقیقت خواهند گرفت و به شکل تابعی خودشون برمیگردند. درست در همون موقع کالسکه‌ای وارد شد که ها اون رو می‌کشیدند. معلوم شد پادشاه و ملکی که نادان سوار کالسکه هستند. اونها پسر گم شدهشون رو با شادی زیاد در آغوش گرفتند. ولی وقتی دیدن که اون خس پوشیده، شدیداً مات و مبهوت شدند. در مدتی که اونها با سابلا خوشو بش می‌کردند و دستانشو می‌فشوردند، کالسکه هایی از هر سو به اونجا نزدیک می شدند. تعدادی پریان سوار کالسکه های خودشون پیش می اومدند. جنسا به فارداکینبراس گفت: "آلی جناب، با اجازه شما، دربارتون رو به عنوان محل دیدار تمامی پریان تعیین کردم. امیدوارم بتونید برای برگزاری مراسم پایکوبی و جشن بزرگی که هر 100 سال یک به مناسبتی خاص برگزار میشه آماده بشید. پادشاه با برازندگی تمام از افتخاری که به اون داده شده بود سخن گفت و بعد با گرگونزولات آشتی کرد. اونها همون موقع مجلس جشن رو برپا کردن. پریمارسونتاین شکل طبیعی پادشا بایارد و همه گی رو به اونها برگردوند. پادشاه بایارد بار دیگه به صورت پادشای زیبا و خوشندام طوری که هرکس کس آرزوی دیدارش رو داشت ظاهر شد. یکی از پریان بلافاصله فاصله کالسکی خودش رو به دنبال ملکی جزایر عدوی فرستاد. با ورود ملکه مراسم عروسی اون دو و به طور همزمان جشن عروسی شاهزاد مانکین با شاهدخت سابلایی داشتن و مهربان برگزار شد. اونها سالهای سال با خوشحالی در کنار هم زندگی کردند. بعد سرزمین وسیع اونها بین فرزندانشون تقسیم شد. شاهزاده جدا از قدرشناسیش به خاطر اولین هدیه سابلا نام اون رو بر روی سمور گذاشت که جانوری دوست داشتنی با خزه زیباست همینه که تا امروز سمورها رو سیبل مینامند که به معنی سمور یا خزه سموره این قصه هم به پایان رسید امیدوارم از شنیدن این قصه طولانی لذت برده باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به سر زمین های را سفر کنیم جایی که پری ها و کوطول ها زندگی میکنن کانال هزار افسان که دنبالشبال دنبالش جایی, دنبالش. جایی که داستان های افسان ای استوره سر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری I don't know.